سلسل چهر و از رسول. رب العالمين السلام و السلام علی سیدنا محمد النور در دو مقام فرمودا بحث میشه یکی مقام ثقوط تكلیف با علم اجمالی و دوم مقام سقوط تكلیف در موارد علم اجمال مقام دوم رو به خاطر اختصارش قبل ذکر کرد که در موارد مجمالی آیا احتیاط جایز یا حمن باید به یکی از دو طریق اجتهاد و تبلید باشه اختلاف بین حصولین و فقها آیا احتیاط بعد از اینکه وجوبی نداره آیا اساسا جایز یا جایز نیست این بحث کردیم ظاهره کلمات مهمتقه قومی عدم جواز ایتیاته با عنوان راه سنبان حضا از نظر نصوص امدار مدار بین اجتهاد و تبرید و عملی صحیح که از روی تبرید باشه یا در بعضی از موارد از روی اجتهاد باشه عدلی زیادی هم نره که جز عدلی معتبر حساب میشه و تبلید یکی از راههایی که متعینه از نظر شرعی برای عوام مرد و عمل بدون تبلیل صحیح نیست. کن مشکوله معاصرین های بایدن به جواز احتیاط و تنسیل هست و از موانع سبوتی و اثباتی احتیاط هم جواب دادن نهات من آقای مطالب کردن باید خوب یک اشراف اجمالی میخواد برای اینکه که میشه احتیاط رو بپذیریم یا نمیشه بپذیریم و بعید نیست که تقویت بشه قول نفی اعتبار احتیاط در عرض اجتهاد و تقوی خودتون تحقیق کنید از چقدر در واسه شما سر نظر علمی و وقت تحقیق کنید یا یکیات رو قبول می‌کنید یا قبول نمکنید این نسبت و مقام دوم مقام اول مقام اثبات تکلیف با علم در نا به مقام اول مشهور قاعدم به منزلیت علم ایمانی نسبت به دو حکمه خورمت و وجوب به موافقت قطعیه به منجزیت عقلیه حالی یا به نحوه ایلیت که نحوه تفصیل در مقام هست بعضی ها به منجزیت عقلیه به نحوه از این به منجزیت هم نیگه به بن و اینها هر کرومش یا نسبت به هر دو حکمه یا نسبت به یکی از دو حکمه حرمت مخالفت و حجور محرمت قطعیه که مجموعا میشه شش تا قول در رابطه بامی ولی ما چه که مفیده از نظر فقیقی بیر از این هست اعلامی که قائلن به مقام ادلیت چون همه قائلا به منازیدیت احمدی منازیدیت و رو کسی مطرح نگرد همه قائلا به منازیدیت احمدیه و خود این مشهور و قول اتفاقی که سر از دوتا مسئله که ادلیت اقتصادم میاره این ها از نظر عملی فردی بین این دو قولشون میسید اونا که قایلا به ادیگه بعدا تخصیص میزنند اونهایی که قایلا به اقتضا دیگه نیازی به تخصیص ندارند و علاقه در قول این اصول در بعضی از اطراف جریان داره حالا یا به ابتدا یا در این تا بعد از اتفاقی که هست برعدم جریان و صور در همه یک را خودشون دو دسته میشن شن بعضی به جریان عرض در بعضی از اترا و از همون ابتدا مثل می زایی بوم بعضی ها که در نهایت عرض جاری می مثل این نسبت به اصل جعیان و که جمعانه سبوکی نداری در مقام بعدی باز خود مشهور بحث میکنن یا حدلی وصول افراف این رو میگیره یا نمیگیره و دارن و همه میپذیرن اونام یا ابتداعا میپذیرن یا نهایتا میپذیرن از فرقی بین این تشقیقات نیست فقط تطویل در کلام یعنی ما اقوال متعددی داریم میشنویم حالا اثر عملی هم داریا نداره ابدا نداره همه بایدن به منجزیت علم اجمالی در شبهات محصول مطلب هیچ فرقی هم بین اینها نیست در مقام هم همه بایدن به یک نظریه به این تشقیقات اصولی تطبیدات بلا تایل سبره بر اینها متوجه اگر کسی بناباشه بعد مباحث علم اجمالی یک سمره یه فقهی کنه، بکنه از اون زاویه که اون گفتیم بحث کنه. یعنی <تصحیح> yani منطقیت علم به هر نحوی باشه نسبت به خصوص عنوان باشه نمانبر فقط همینه که فرقه به از زوایه دیگه چه خرقه برش نیست شما یکی از تقه ها رو پیدا نمیکنید که قائل بشه این که در اطراف به محصول هنری میشه. از نظر فقهی قائل نمیشن، قائل به وجود احتیاضن. دیگه اون باید, باید, باید, باید, باید, باید, باید بررسی کنیم. یعنی اگر فرقی بین ادم شمالی و ادم هست، فقط در همینه علم این ذات رو منعجز میکنه، غیر از اینکه اینوان رو میتونه منعجز بکنه. ولی یک مجمالی خصوص انمان یعنی انمان اهده ما نه ذاتش و ما نجسه فرد نجس بر ما منجز نمیشه پانش منجز میشه و اگر انمان باشه قابل تدبیر نبر اولی تدبیر بدیم یا بر و یک مثالی هم برای و برای فردا همونی بنویسم در مواردی که یک زنی علم اشمالی داره به اینجا یا سه روز اول حیزه یا سه روز دوم حیزه علاکه در تقدیل یکی از این سه روز حیزه کدومش حیزه حساب کنه دست خودش مشهور میگن اولی رو نمیتونه حیزه ساب کنه حتما باید دومی باشه اولی چرا نمیشه چون از عدم و دو مثلا این دوی چیزی چون عدده دارن که برگشتش به استثابن استثاب نمیداره اولی ثابت بشه موقول میشه به دومی به آخری ولی اگر بنا باشه مبنای این باشه که مجمالی عنوان رو منجز میکنه عنوان قابل و تطبیر قابل تطویر بر هر کدوم زن خودش اختیار داره اولی رو هیتصاب کنه یا دوم. چشکالی همیش نمیاد آسمون به زمین نمیاد کام که زمین به آسمون نمید فرق نده خودش مختاره و خیلی از مباحث همینطوره باز یک فرعه دیگه نیاز به تحقیق داره مراجعه کنید در قربه اینی که اگر کسی شک بکنه در مسافت شرعی بایی این مسیری که من اوبداً مسافت شرعی هست یا نیست یا مسافرت مسافرتمند مسافت شریع هست یا نیست وقتی که دارم میرم برگردم وصافت شریع صاحب میشه نمیشه افروض کیلومتر نیست چیزی نمیدونه در این موارد قصد بخون یا تمام بخونه موارد علم جنانیه شبهه داره دو طرف دیگه یا الان تا این مقداری که اومده مسافت یا دو <تصفح> در مزجه داره داره دیگه علم داره به اینکه مسافت شرعی موجب به اینو داریم ولی آیا اینه یا باید یه در سیلمت برم ندوده علم حالا در عربه عنوان علم اجمالی مطرح شده دیگه در عربه عنوان علم اجمالی مطرح. خب این آن ما چطوری فتواه بدیم ما بگیم اصل عدم حدوث مسافت شرعیه که سال میگه و مشغول میگن مشهور میگن اصل عدم حدوث مسافت شرعیه بنابراین بقیه علت همام علال اخوا فتواه سیدم علال اخواست یعنی اختلافیه مثلا اگه مندزیت علم اجمالی نتصافه پس چیشون علال اخوا فرموده بر اختلافی خیلی جانه و سید حکیم هم در مستمسک اومده تعلیل کرده به هم نستسا و بعد موجود پس این علل اقوان شاهده برای اینه که منعزیت علم اجمالی نسبت به هر چیزی یک گیری داره اون گیر باید در بیاری و الگر اینقدر صاف بود که علل اقوانه میخواست علل اقوام بزرگترین شاهده برای این که خلافیه مستده برای کسی اومد استثاب ادمی بودو ست وصافت شریه رو قبول نکرد چی بگی؟ موضوع برای این استثاب است مثبته. خودشون میگن از ادم مسافت شری در این حده پس بعدیه اون پس اثبات نمیکنه. پس مبانی یه مقدار مسترد میشه. تنها راه حلش اینه که قائل بشیم به تفسیر که این مجمالی منجز انوانه نه ذات ذات مشخص نمید از سمرات باید بر این مترتب بشه یکی از سمراتش اینه که این فروات این طوره بتونم زود حلش کنیم بدون تمسخه به استصاب یعنی بدون استصاب ما بتونم اینا رو حلش کنیم حالا از چراهی باید حل بشه مغتماتی نیاز داره یکی از مغتمات تقسیمات که در علم اجمالی هست و خود مصنف هم داره و اینا رو ما تو سه صفحه نوشتیم اولین مطلب از مطالب تقسیمات باب علم اجمالی علم اجمالی هم میدونن؟ منعجزیه علم اجمالی ببین بله همه قائلا بنابراین مختزای منعجزیه علم اجمالی عقلیه در موارد شکل در مسافت جمع هم بس بهونم تمام سید میگه بنا علا تمام علل اخر بنابراین منعجزیه عملاً قبول ندارم اونا که مثلا نکردن ما میخوایم این یه سری در این بین کشف میشه که یه راهن خودش مشهور نمیتونم بپذیرند. مثلا سید فقاحتش به همینه یعنی سیدی از وقتی میگرد افت بخیل به خاطر همینه ایشون منصفیت نفذیرفته دیگه نفرموده جمع کنه بین قصد و تمام که مختزای مبنای اصولی همینه یعنی نگره علم اجمالی عقلی داره مختزاش احتیاط تام من جمع و قصد جمع بین قصد رو تمامه و فتوا نداده چه لزومی داره ما منصدیت اینطوری مطرح کنیم و بگیم احتیاط واجبه بود و وقت در فقه اینطوری فتوا نمیدن خود دیگر حکیم حکیمم هم همینطور قبول نکرده جمع بین تمام و چون تعلیف کرده همین فتوای سید میدن از امدن به چیزی که میگن در فقه منتظر میستن ماش میگن نمونه خروار دیگه این یک کاربرد پس ما میگیم منعزذیت عقلیه غیر قابل تخصیصه حتی یک مورد نباید تخصیص بخوره با خورده دیگه یک مورد یا یک فرع دوم یه فرع دیگه هم هست اگر یک نجاستی بیفته به یکی از دو آبی که احدهم المعین نجسه یا بوله یا متنجز این نجاست در اهده ما افتاده این اهده خودش متعینن یکیشون نجز لم یه کم به نجاست الاخر یعنی به نجاست اون تاهر خوک نمیشه چرا نمیشه؟ به خاطر این قبول ندار منسیزیت که هم اگه قبول میکردن باید با حاله به نجاست و اون یا به وجود به اجتنابش میشدن نشدن گذر استیحاش نشه بعضی از موارد یه مطلبی یه توی مطلب میشه که مشهور اومدن گفتن اما احتیاط واجب و بلانی چرا داره نفکش میکنه ما کجا نفکش کردیم؟ این قبول ندارم خودشون یعنی تحافظ بین مبانی اصولی با فتاوای های لذا از همون اول ما شدیم به منعجزیت و اقلالی که یه تأییلاتی از کلمات خود سیده یزدی در هاشی رساین هستش، استیحاش هم نداره و اگر امدافر بشه بین نظر این فقی با فقاهای دیگه یقینه سیده یزدی تضروه ششتره نیاز به تحقیل داره این دو تا فر که اگر یک نجاستی به یکی از دو آبی بیفته که اهد و همه معیین نجیسه میدونیم کنومش نجیسه ولی علا حکم کنیم که این نجاست در اون طاهر افتاده لن میان کن یعنی چی؟ یعنی منززیت عقلیه نداره دیگه پس استیحاش نداره و اینا تقویت میکنه نظریه محقق قمی رو حضا ترسیخ در اصحان خیلی مهمه یه موقع انسان یه درسی رو می تمام زمین ها برمیگرده ترجمه روان خوب منتها اون چیزی که در ذهن باید رسوخ پیدا کنه رسوخ پیدا نمیکنه اساس مطلب در درسها ترسیخ مطالب و مبانی در ازهانه یعنی یک ذهنیتی پیدا بشه ما ذهنیت پیدا کنه به ذهنیت پیدا کنیم بر اصل اختلاف مبانی و فتا خیلی مهمه خیلی انسان مبانی اصولی رو چشم بسته نپذیره و اختلافات رو بپذیره اینا اختلاف داره هم مخاطر همینه اختلاف در مبانی اصولی مضافت بر اینکه خیلی از چیزها هست که شهرت در اصول داره ولی در فقه آبل انتظام نیست یا منتظم نیستن فعلا ذهنیت ها خودش بهمید یه ذهنیتی پیدا کنیم برای اینکه احتیاط میتونه جائز نباشی برای چی احتیاط رو جایز بدونیم و بعضی جایز چرا ما جایز بدونیم و میگن آقا نه این فقه جدید نه رو جدید نیست الان فقه قدما رو نگاه کنید دست نخورده است و این همین مطالب رو داره بعدا تطور فقهی یه مقدار ناموضوع شد به خاطر ناموضوع بودنش اینطوری شده و اینا نه اونا تاقاشون خیلی قویمتر از متأخرین حساب میشه. این نداره, نداره. نداره اونا نداره. اوننا منزییه به این دهید که ماها داریم میکنیم نداره. قائل به وجودوع به شنابل نیستن. معلومه یه سری بوده دیگه د میشه بگی شیخ مفید فقهش رو بیان با ما سریم بتنندیم. و بگیم شایخ حموفی دیگر نمی‌دوند استاد ود نیم این طور این یعنی فر... فر... با که یعنی عادت خب, خب خودش مبنایی، همساره آیکوینه این فدیله. استثاث در شو با حاضر حکیمیت ما الان در مقام این هستیم که در فرق احتیاط هم قبول نداریم مقام در مقام باشیم که استثاث به نفر هفت برای چی هست؟ برای این که الان ما بودنش نهم نیست اشکال ریناهی کنیم که ما این دیگر از فرق خالش میشه ما الان در مقام این هستیم که میبینیم کدام تحییده دیگه درسته؟ برای این احتیاط باشی یا نباشی دیگه. اگر بگیم باشه اگر بگیم استثاظ را باشیم اشکال بناییم که استثاظ قبلو نداره بگیم که استثاظ نیست اما اگر اشکال اون محایم که مصدر کنیم که کدوم تحیلیه باید استثاظ جواب دیم خوب در استثاظ استثاظ را کنیم خوب که هاش بلکه اینکه اولمامون بهش عمل کردن در استصحاب پایه‌ای روایت هم داره دیگه خب حالا جواب شما از این استصحاب چیه جوابمون در این مقنعه اینه خب پر هم ارضه و هم که حالا اگر به واری نه هم وارد شد خود استصحاب رو برقرار کنیم که خب یه بحث دیگه‌ست نه قبول داریم. شما جوابش چیه ما شما نفت کردین هم تو که تخدیره چرا باید بگیم نباشه ما میگیم 3 نوزه نباشه چرا بگیم تخدیره خب بشه به استساب نیست حالا اونای که قائل نیستن به استساب مثل آرخویی جوابشون چیه استاد اگر در مقام این هستن که رو میگیم، درسته تیهید مرتضا از قبول نداره این یه بحث دیگه است اما اگر در واقع ایناغذی بزفرد... اه... ام که بگیم کدام صحیح میگه؟ مرتضی صحیح میگه یا جعفر تغییر دیگه صحیح میگه. اصولیه دیگه صحیح، چه قنصاری صحیح میگه. اگر در مقام اومدیم که کدام قول صحیح میرا بگیم، هم ترفیق بشه، مشابه باشه، ما بعد هر دو رو عدلند بنویم. اگر بخوایم بگیم که سید مرتضی صحیح میگه استصحاب قبول نداره بعد میام صراغ استصحاب نگیم میگیم چون و قبول نداره ما میگیم این بین این حال اونایی که میدونم خیلی تفصیل نباشه اونایی که استصحاب رو قائل نیستن مثال خویی در این موارد چی میگن باقی گفتیم چه یدیی قبول داره آقای حکیم هم داره کرده دلیلیش رو استصحاب عدم حدوث عیده حالا اونایی که قائل نیستن مثال خویی چی میگن و ما وقتی استصاب رو برونه چرا تخیر بگیر با تخییر استصاب میشه ردش کن استصاب که حاکم بر تخییره ضعیف تر از استصاب همسان تو ندارم رو مسئله هم خاصم به خوب... که نداره وقتی مثبت میشه نه دیگه این دوست ما وقتی که آقا صفر نکرده قبول کردیم شما منظور این داریم ثابت نمیکنه که این باید اصل مثبت دیگه این این که چرا ما اصل مثبت حالا ما نظریات نمیخونم مطرح کنیم وقت که میشه. شه حالا لبه اشکاف شما چیه لبه شما بگو اشکاف بعد چند جلسه شما اومدین اینا رو خب بگید یعنی تو دادگاه هم که باشه رخان کسی رو محاکم میکنه تو سه بار میبرم میاره یعنی شما اینجا دادگاه حساب بکنید نه, نه, نه, نه جلازه دوم سوم این ما به نظریات طلبه ها احترام واقعیم تحقیقاتشن هم قبول داریم ولی بحثی که ما قبلا چهارشنبه چیزی گفته بودیم بین عنوان و معنون عنوان مزاد چیزایی میخواهم از اون طریق حلش کنیم بعد چهارشنبه گفتیم که اگه کسی خواهد به مبانی مشروع در علم مالی باشه باید حتما قائل بشه به وجود احتیاط یک فرعشم اینی که در مسافت مشکوکه قائل به جمع بشی سید قائل نیست آی حکیم قائل نیست و پنج شیشت از معاصرین زندم قائل نیست بنابراین منسزیت علم اجمالی به نحوه افلید اینا قبول نداره بله؟ فارغ نداره هیچ فرقی نداره اونا رو حالا تحویل می کنم آره بحث ما چهارشنبه بعد امروز داریم همون رو می خوام تقدیم بشیم تا فردا می تونیم اسفاته کنیم که اجمالی یک عنوانه مثلا عنوان عهده ما رو میگه نجسه ولی دو تا ذات طرفین رو نمیتونه بگه نجسه این خیلی مهمه بعد کسی شاید تو ذهنش بیاد که این با خلافتای مشهوره هم. دو الان بحث کردیم نرسید یه دیگری و 15-16 از محشید قائلا به همین نظریه بنا تمام علا اقما چیزی که در ملسزیت مجمالی مشهور میگن در اصول فرح هم قائل نیستن ما اینو بگیم این این به الان ما مضمون با این قبول نداشتن اشکال به با این قبول مشغول مشغول ببینیم ما می‌خوایم بگیم مشهور مگه نمیگن مرجعیتش عقلیه. و حکم عقلم غیر قابل تخصیصه. از چرا یه مورد تخصیص خورده؟ همین یک مورد نه ها هم همین مسافت شرعی خود یه رو از مشهوره پس چرا منتظم نشده؟ ما اینه میخوایم بگیم یه راه میاموره پیدا بشه برای اینکه همیشه احکامونو مستند به استصاب نکنه <تصح> هم اگه شما قائل به توسعه در استصاب بشید در هر فری پنشیشت استصاب همیشته آرزم کن و خود مرحوم ناینی هم نمیتونه جواب بده این استصابات ما چطوری هم بشکنی بعد یک شخصی مثل صاحب جواهر میاد این استصابات رو بذاره کنار نیاره دخالت نده یک شخصی پیدا میشه به نام پونه کابونی در قصص علماء مینیمیسی که صاحب جواهر ثواهات اصولی نداره اینجوری میشه برای که پیش نگم خود صاحب جواهر میدونه که استثام اینقدرم توصیح ندار آره حالا انشالله که پناه شد شما ادامه بدی در خدمتی ولی آره بحث فراتر از این چیز هست. خیلی. خیلی چون وقتها خیلی کمه آقای اینم قصد نوشتن رساله اینها دارن <تصفيق> با اون خواهد هم یه راه میانبوری باشه زود به مبنا بلستم یه مبنای باشه مثلا یکی از مبانی که منعزیتی مجمالی و قلعاییه نه عقلی یکیش اینه که متعلقش عنوان نه معنون نه زاد مثال های زیادی هم از اول سال داره میزنیم یعنی شاید پنجاه جلسه با این آقایون همینا رو داریم هی مواصیه میکنیم. بازم باز، شما متراسه بر سلسله های قبل. استصاب رو مشهور الان عام میدن. در همه چیم اینا دو دستن هم بعضی هم این قاعده یقینه نه قاعده استساب بعد بعضی هم, هم به اینکه خود روایات تهافت درونی داره صدر و با هم نمی سازه قبلا کردیم به یک نحوی بعد امده ترین شبه در باب استساب هم و شبه یک نراقی دا آی خویی داره هر استصاب مجعوری معارض با استصاب عدم جرلی این اصلا مثل فرشتگانی که خدا بر انسان ها موکل کرده هر استصاب مجعور یک فرشته عدم جرلی داره که ما واسه این هم قایبم و معروف شده به عدم جرلیان استصاب در شبهات حکمیه ای کلویه ازا خیلی زیغ میشه از همه این مبانی مطرحی حالا خودتون میتونید نظر بدین ولی من حسول مجموع میتونید دائره چیه مقدار زیغتر بکنیم که فهم شاختون تر باشه. و اگر کسی انشالله به یک مرتبهی بلسه که بفهمین مبانی رو نیاز به تغییر اینطوری که نیست خودش میفهمه و قبول بکنه میخواد قبول نکنه هر کس صاحب نظر میشه خودش حالا حالا مطرح که اینجا مطر تقسیم تا اینکه برسیم به اون تفصیل بین انوان و ذات و خیلی مهمه که ما اگه متعلق یک حکمی رو انوان بدونیم جز متقیرات میشه معنون بدونیم جز سوابت میشه مطلب اول برای توضیح اینها و رسیدن به این تفصیل تقسیمی که خود مصنف داره تقسیمش اینه که اشتباه در اطلاف علم اجمالی بعد سه اشتباه یا در موضوع با تبعیون حکم یا در حکم با تبعیون موضوع یا اشتباه در خود حکم و موضوع معن ایش سه بعد این سه یا به نحوه شبه حکمی یا به نحوه شبه موضوعیه. میشه شیش قسم و اونهایی که قائلا به فرق بین شبهه مستاقیه و موضوعیه میشه دوازده قسم و اونهایی که قائلا به فرق بین شبهه مفهومیه با حکمیه میشه بیشار بسم حالا هر کدوم شما قائلی. ولی چون مشهور و یکی از مشهور خود مصنفه قاعدن به دو تا شبه فقط یعنی حکمیه و موضوعیه مثل به موضوع برمیگرده مفهومیه هم به حکمیه برمیگرده لذای نامیشه شیش قسم و این 6 قسم یه مقدمی میخواد که خود ما سننفم داره و اونی که تعریف شبه حکمیه و موضوعیه در باب تعریف شبه حکمیه و موضوعیه دو تا تفسیر هست یک تفسیر از مشهوره مشهور غایلن به اینکه شبهی حکمیه مستند به فقدان نست اجمال نست و تعارض نسته که خونده در گتاف های اصولیه و, و شبهی موضوعیه چیه مستند به اشتباه امور خارجی است ایچه رفتی بشاره نده تفسیر دوم برای شبهه حکمیه و موضوعیه اینه که هر شبهی که حلالش خود شاره باشه این چه حکمیه هر شبهی حلالش قیل شاره باشه باشه موضوعیه بعضی از شبهات حلش که به شاره نداره ولی بعضی از شبهات رو شاره باید حلش کنه آیا مادر قیمه یا عموم ظاهر شبه موضوعی است، ولی در واقع شبه حکمیه حساب میشه شعره باید بگه. قیمومیت رو به مادر میشه بدیم یا نمیشه بدیم اشکر میگن نمیشه بدیم. حتی غریبه بر مادر مقدم بلو نسبت به دختر به اینجا ارتباطی هم به هزانت نداره قیمومیت غیر از هزانت بلو در حقوق خلق میشه در حقوق یه مقالطه که میکنه ازانت رو میارن توسعه میدن به نحوه یک قیمومیتی در میارن ولی از نظر فرخی فرخ از فرخی فرق داره اما که قیمومیت از ولایت امو و پدر هر کدومش قیمومیت هم پیدا بکنن ولایت پدر رو ندارن مال پدر قیمومیت نیست ولایت مال مادر اگه باشم قیمومیت و همثال این از بحثای دیگه هم. ظاهر شبهه موضوعی هست در واقع شبهه حساب میشه هر شبههی که رفعش به دست شاره باشه بگن شبهه حکمیه شارع باید حلش کنه بلا ظاهرش شما ما نگاه کنیم شبهه موضوعی هست. حالا بعد از این دوتا تفسیر علمجمالی آیا همه این موارد رو تنجیز میکنه یا تنجیز نمیکنه علل قاعده تنجیز میکنه یعنی چه شیش صورت باشه چه بیست و صورت باشه همه رو تنجیز میکنه چرا به خاطر این منعجزیتش عقلیه و احکام عقلیه قابلیت تخصیص رسلا نداره یاد در م... یک مورد منعجزیت داره در یک مورد منعجزیت نداره این با سنخیت با احکام عقلیه سنخیت نداره اون هم به خاطر اینکه مشهور قائلن به اینکه که احکام عقلیه غیر قابلتن لتخصیص مطلقا چه احکام عقل نظری باشه چه عملی باشه این هم باز مبنای مشهور خلافن نسته شهید و خیلی از فلاسفه و بعضی از معاصرین که قائلن به اینکه نه اگه حکم عقلی هم غیر قابل تخصیص باشه خصوص عقل نظری عقل عملی قابلیت تخصیص رو داره خب این هم مبانی موانی در همه یعنی یکی که باید اینا رو در بیاری ملتزم بشی بذاری کنار روش مباحثه بشه روز ت... روینا تحقیق بشه که تا خواهی متعددی آدم باید بخونه یعنی واقعا مثل کندن یک کوهی با سوزن که بشین اون بالا بکنی بیاد پایین غیر این باشه انسان مسلط نمیشه ابهام از مسائل برطرف نمیشه مگر اینکه که راه های میانبور را آقای این کنن یه راه خیلی از مدت ها بود میگفتن آقا استصاب یک امر ارتکازیه با اینکه که واقعا ارتکازی نیست ارتکازی نیست اتمن برکه خلاف ارتکاز. هیچ موقع اقلاه در امور حامه خودشون و مهم خودشون بنا رو بر نمیزرن. در اون چیزایی هم که بر صابق بذارن که درد قلانه نخوره. اعض که امر ارتقاازی حساب نمیشه و خلاف ارتکازه. از یک شخصی طلب داره شک بکن آیا گرفتن یا نگرفتم بنا رو بذارن من صابق. یا بهدهکار باز همینتون، اینطوری نیست یعنی؟ امور بین اغلا فرق داره و تقسیم میشه به حامه و غیر حامه به اینها در امور غیر هامه حکم الزامی ندارن در امور حامه بنایه بر سابق ندارن و کجا شرط در مزفر و خیلید کتابان میگن نه حیوانات هم از تا میکنن رو از سهرا ودش کنیم میاد خونه ما این استصاب رو یا 40 می خواد. پس اینا مغالطه ساق میشه. 20 مغالطه داریم. و شاید حرفهایی که ماها میزنیم می زنیم، هر حرفایی که من میزنم اینها اینا شاید 80 درصدش منطویه به مغالطات. حالا بعضی از مغالطات علمی ارزش یا فنیه. و فنیش مزره. علمیش اشکال نداره در منطقم خوندید. مغالطات علمی اشکال نظری بخاطر اینکه برای تطبیق مقاله و یکی از مقالات علمی مصادره به مخدومه اشکال هم نداره یعنی اسمش اینطور نیست غلط انداز باشه علاکوله ها تک تک این مبانی مباحث پیش برید دیگه و اونهایی که میخوان واقعا در هر مسئله مبنا داشته باشن هر کار باید بشنون روش تحقیق کنن مطالعه کنن با یک کتاب دو کتاب فایده نداره بیشتر تحقیق کنید تا زودتر به جزم برسید حالا این تقسیمه بله. اگه نرشه هیچ علمی حاصل نمیشه به خاطر شما در هر مسئله بخوای به جزم برسی اون مبتنی برای مقدمات مقدمات رو باید بپنسیم مونت در من رو شما اصلا قبول ندارید. من بیان این رو دوباره در حال در شما میگه من قبول ندارم من نه جا این شو. این اون مقتنی بشه به اصول مطارف بعد جزم حاصل میشه و اول علم همینه دیگه اولش انسان خیلی زیاره بلد نیست باید یه موقع مقدمات رو بپذیریم در علم نفع ما پذیده که کلمه میشه بر برسته تا کارا پیش رفت نپذیریم همین خیلی یا معنا میکنن میگن اینجا مصادر مصروبه معنای نایی میگن در وقت اشکال محلوم تفضیباری بیان میگن که ایشون محلومشه میگن که اینجا برمیگرده به اختیار این نشد که اینو اصلا قبول ندارده مصادر مصادر مصادر به درست نمی کنید اینجا از بگی محلومشه در حالی که چیز دیگه گفته مصادره مطلوب رو تعریفش حتما تو منطق خوندید نیست دیگه. که به چی میگن مصادره به مخدوم نه اینکه باطله. نه, نه تعتدبن تلمیز میپذید برای همینه و ایلا اینکه همه باطلیه هنوز به نتیجه نرسیده تو هفته بعد میرسه دو سال بعد میرسه و دلیل مسئله همینه و ایلا از اولینه ها رو ما قبول نکنیم مبنانی از حاصل نمیشه و سیر بحثا به همینه الان کل حال برای رسیدن به تفصیل بین انوان و فرد و اگر که خواهد بشه به اینکه در این مجمالی اون چیزی که منحسز میشه عنوانه نه معنوان الان در رابطه با معکول ذات این حیوانات مانیت دارند یا عنوانش اختلافی بین نائینی و مشکل یعنی اون چیزی که میگن در لباس مسلی بین معکول له نباشه. یعنی لباس شاید از اجزای غیر مغل له نباشه از ذاتون حیوانات از اجزای خود ذاتون حیوانات دهگانه و سیزه اینها یا نه عنوان محرم له کدومشه بو اختلافیه بین ذات و اینها یا خیلی از مباحثی دیگه در مکاس محرمه داریم بحث میکنیم این حرمت ها حرمت های انوانیه یا حرمت های ذاتیه قمار حرمت انوانی داره یا حرمت ذاتی داره نه قمار بازی قمار یا شطرنج حرمت انوانی داره یا این بگیم اگه به صلاح باشه اشکال نداره اگه به صلاح نباشه اشکال داره خب اگر حرمت ذاتی باشه تغییر نداره حکم ثابتی داره یا لمس اجنبیه خب نگاه به اجنبیه رو میگن حرمتش انوانیه اگر اون خودش مبتزله یه میاد بیرون نگاه کردن بهش بهشم اشکال نداره ولی لمس حرمت ذاتیه با هیچ اجنبیه نمیشه دست بدین خب اینا در فقه هست در فتاوا هست یه اصول مطرحه در الموسول میخواد یا نمیخواد که ما اشتراف پیدا کنیم که بعضی از احکام طوریه بعضی از احکام اینطوریه. هست نگاه به اجنبیه رو میگن منوط به احترام اون شخصه اگه خودش برای خودش احترام قائل نیست ما میتونیم نگاه باید. یعنی مبتزلات حرمت ندارن لذا حرمت نظرم ندارن ولی لمس اینطوری نیست لم حرمت ایسا از کجا بپهمیم؟ لسان روایات شما هم همینطوره ولی یک ذهنیت فکری میخواد طلب پیدا کنی یا نه؟ یک ذهنیتی پیدا کنیم که بعضی از موارد قابل تغییر، متغییره لذا خوی خویی قایل میشن به اینکه مبتزلات رو میشه نگاه کرد آقای پایگانی قایلن میگه نمیشه نگاه چون اختلافیه چون رو انوانه انوان چیه؟ احترام شخص، شخص آیا ملاک حرمت نظر حرمت شخصه؟ یا چیز دیگه؟ اختلافیه ما اگر ذهنیت پیدا کنیم تسلط پیدا کنیم اگر ذهنیتی نباشه بر پیدا نکنه فایده ای ندارد. در این دو تا درس من همیشه تلاش اینه ذهنیت پیدا بشه. و اینا مطالب رو خیلی از آقایان بهتر از من خوندن و میخونن و مطالعه میکنن حتی بهتر از من می‌تونن بیان کنند. این ذهنیت سازیه یه ذهنیتی پیدا بشه برای تفسیر بین عناوین و ما. شیخ در مطاره اینو در چندین جا مطبع کرده چند نفر از پیدا کردن؟ در باب آن بخواست؟ حالا چرا من دیده بودم صفحهشو نگاه میکنم یعنی یه آدرسی بدن آخایینم باز مرازوه کنن خود شیخ داره در مطاره مرحوم ناینی در صلاحات مشکوکش داره دیگران دارن آی خویی در باب خمس داره در جد دوازده داره ولی خب ذهنیت پیدا بشه اون مطالب علمی فنی درست ولی ما باید ذهنیت پیدا کنیم حالا یکی از این ذهنیت ها که ما مطرح کردیم مفید یه میانبور حساب میشه به نظر من اینه که علم اجمالی منجز اناوینه نظمات لذا ترخیص تو دلشه لازم نیست ما بگیم اصول مؤمنه در اطراف علمش مالی جاری میشه ما کل شهی اندکن رو بیاریم در اطراف جاری بکنیم یا نه نیازی به اونا نداریم ترخیص تو دلشه تعلق حکم به انوان یعنی متقیر یا یعنی حکم متقیریه قابل تغییره من نمیدونم این زید عادله یا اون زید خش سر که دارم نماز میخونم درست اشکال نداره چون منزز انوانه ذاتش مهم نیست بعدا هم که فهمیدم این ذات ذات فاصله نماز من درست خود مشهورم من به همین ولی بیانش به چیه؟ بیانش در کلمات نیست چرا شما اینطور استقتا و جواب دادی خب بیانش نیمده تمام فقهای خویی یک طرف استفتاعاتش یه طرف استفتاعتش مستدل نشده اگه مستدل بشه یعنی آقا اینا تعارض داره با مبانی خودش گنابراین استفتاء مهمه چون نهایت فقه همین اگر کسی بخواد در مقام افتا به استفتاعت اشکالی نداشته باشه شبهی براش پیش نیاد این باید مسلط باشه ذهنیت بی پیدا کنه الان شما این ذهنیت رو بفضیدید که لمس فرمت ذاتی هیچ موقع ترخیص نمی کنید. هیچ موقع ترخیص نمیشه. ولی اگر این ذهنیت نباشه هی ما مجبور به همه که که میاد بپرسیم مقنانی هم که نکنید اینا این که داریم می به این انسجام نیست که مفید باشه با این وقت خیلی محدود 4 پنج سال انسان بتونید به دست بیاره این مبانی رو آقای مخصنان بدونن. علم اجمالی منجز انوانه نه منعجز فرق و ذات علم اجمالی داریم به اینکه یا این گوش هرامه یا این یکی گوش هرامه ترخیص تو دلشه بله آفیه. علم اجمالی داریم بله همون مبنای رو بیضای علم اجمالی داریم به اینکه که این قضایی که من دارم میخورم خمسش نداده یا اون قضایی که دیگری داره می‌خوره. علم اجمالی دارم به این این منی مال امامه یا مال معمومه کدومشه؟ به کدومش میشه خدا کرد؟ به کدومش نمیشه خدا کرد؟ و هشت تا مسئله رو مصنف در این قسمت مطرح کرده که علم تفسیری متولد از علم اجمالی یعنی علا کل تقدیر این حکم است. اینها رو میگن بر خلاف و بر خلاف مشکوره چطور میخوایم جواب بدیم اینها رو تا مثلا حکم به تنصیف یک همه مشترک که یقینا برخلاف خلاف اون که قبلا بوده ولی حکم شرع به تنصیف یا چطور جواب بدیم مصنف 6 تا را حلا برده ولی هیچ کدامش رو نفذیر چی رو پذیرفته چیزی نپذیرفت چون دیگه چیزی نمونه پس ما چطوری این رو تنها راه حلش تفصیل بین انوان و ذات بنابرای بیهوده نمیگیم نارا وقت بذارن همه این مطالب مصنف رو بخونید هشتا فرعه با شیشتا توجیم هیچ کدامش رو نپذیرفته و خود صاحب اوسط تصریح کرده مصنفی شیشتار داره میاره نه که اختیار کنه برای که توضیح کنه فتاوای دیگران رو و ایلو نه پذیر اینها رو پس چی و پذیرفته پذیر اینشون داره که ایچی نه پس چی میخواست بگه در این موارد اونم ایچی نگفته چی بگه پس یک حضی باید باشه بیاد من حضش کنه و اون تفصیل بین انوان و ذاته هر دنشان در مگه ذکی شروع بود فردا ما علم پیدا از این علم حاصل میشه دیگه علم اجمالیمون اون که حاصل میشه اصلا چه قدر یه قضیه منتسبه قضیه منتسبه قضیه منتسبه قوام علمشمالی به قضیه ما میسید تصدیمشن یک دفت دهتر از گرام کرده در مون قضیه مستید به صورت این قضیه